نویسندگان، شبانان، سایت های اینترنتی و هر کسی به نظر میرسه از آمدن سانویه ایسای مسیح حرف میزنه. چون در زمانی نامعلومی زندگی میکنیم. به دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. کلیس های تسالونیکیان در جفا بود و حتی بعضی ها به خاطر ایمانشون شهید میشدن. کسانی بودند که در مورد آمدن سانویه مسیح سردرگم شده بودند و حتی بعضی ها میگفتن اون قبلا اومده. در درس امروز معلممون درنامه پولوس بینیمانداران باوفا. اما ترسان در تسالونیکی صحبت میکنه. ضمن مطالعه این رساله از خودتون این سه سال رو بپرسید. اون چی میگه؟ منظورش چیه؟ و برای من چه مفهومی داره؟ یا چطور میتونم؟ اونو در زندگیم به کار بگیرم. حالا به معلممون ملحق میشیم تا با هم از کلام خدا یاد بگیریم در این جلسه ما اولین قسمت از نامه پولس به کلیسای تسالونیکی رو بررسی خواهیم کرد موضوع نامه اول تسالونیکیان بازگشت سانویه ایسای مسیح است. این مهمه که بدونیم بازگشت سانویه ایسای مسیح یک رویداد تنها نیست بلکه یک سری رویدادهای مربوط به هم هست اولین واقعه که بقیه یه رو تحت شاه قرار میده ربوده شدن کلیسا هست. پولس در این نامه ربوده شدن کلیسا رو اینطور توضیح میده. ای برادران، نمیخواهم در مورد آنانی که در گذشته اند بی اطلاع باشید. ما با دامانند سایر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارن غمگین باشید. زیرا اگر ما معتقدیم که عیسی مرد و دوباره زنده شد، همچنین ایمان داریم که خدا آنانی را که در ایمان به عیسی مرده ان، همراه عیسی باز خواهد آورد. ما این را به حکم خدا به شما می گوییم. آن کسانی از ما که تا روز آمدن خداوند زنده میمانند زودتر از مردگان سعود نخواهند کرد. در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور شنیده می شود خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده خواهند برخاست. و آن کسانی که از میان ما زنده میمانند، همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خود خداوند خواهیم بود اینها آشناترین سخنانی هستند که پولس رسول برای مسیحیان تسالونیکی نوشته پانزده آیه اول باب هفته اعمال رسولان شرح زیبایی هست از چگونگی تحسیس کلیسا در تسالونیکی این آیات به ما کمک می کنند که خدمت العاده پولس در اون شهر رو بهتر درک کنید چیزهایی که برای من در پونزده آیه بابه هفته اعمال رسولان العاده هستند عبارتند از اینها پولس فقط سه سبت رو در تسالونیکی حضور داشته یعنی در طی سه هفته کمتر از یک ماه کلیسای قدرتمند تسالونیکی تأسیس شده این حقیقتاً حیرت انگیز هست من با خادمینی در مناطقی نظیر شمال پاکستان ملاقات کردم جایی که اونها حدود 26 سال زحمت کشیده اند در حالی که هنوز یک نفر هم در اونجا تبدیل نشده و هیچ کلیسایی در اونجا تأسیس نشده است پولوس در ای کمتر از یک ماه حضور داشته و در اونجا کلیسای قدرتمندی تأسیس کرده او در تسالونیکی سه سببت رو پشت سر هم به کنیسه ای رفته و در مورد انجیل عیسی مسیح معزه کرده بود با وجودی که او سه هفته تمام در کنیسه موعظه کرد اما اولین فردی که ایمان آورد یک یهودی نبود بلکه شخصی یونانی بود مردان برجسته و زنان برجسته یونانی نخستین کسانی بودند که در تسالونیکی ایمان آوردند. نخستین کلیسا که در اروپا تأسیس شد در خانه زنی به نام لیدیا تأسیس شد. که در کنار ای در مقدونیه کلام خدا را از پولس شنیده بود. ما میخونیم به محض اینکه که پولوس کلام خدا را باز کرد، خداوند قلب اون زن رو باز کرد و بعد از اون او در خانهش رو باز کرد و خانه او نخستین کلیسای اروپا شد. به گفته لوقا، خدا از زنان متشخص یونانی استفاده کرد و اولین کلیسا رو در تسالونیکی افتتاح کرد. همونطور که برای تأسیس کلیسا در فی از زنی استفاده کرد بعد از اینکه این اتفاق در تسالونیکی افتاد یهودیان به شدت به پولوس حسادت کردند اونها چنان پولوس را تحت آزار قرار دادند که اون نتوانست حتی یک ماه هم در تسالونیکی بماند پولوس مجبور شد به بیریه و از بیریه به آتن و قرنتوس برود و از همانجا بود که نخستین نامش را رو برای تسالونیکیان نوشت تیموتاوس و سیلاس در تسالونیکی ماندن و بعدا در آتن و قرنتوس به پولس پیوستند. تیموتاوس گزارشی از ایمانداران تسالونیکی را برای پولس آورد و گزارش او باعث دو انگیزه در قلب پولس شد. اولا شادی و ناپذیری در قلب پولس به وجود اومد وقتی که تیموتاوس به او گفت: پولس، شاید باور نکنی اما این تسالونیکیان واقعا در خداوند قوی شدن با وجودی که حتی تو نتونستی یک ماه هم در اونجا بمونی، این مردم بسیار در ایمانشان رشد کردند. روح القدس در قلب اونها پشت سر هم معجزه کرده بود کلیسای تسالونیکی واقعا کلیسای قدرتمندی شده این خبر خوبی بود اما خبر بد این بود یهودیانی که به خدمت در تسالونیکی حسادت کردند، به شدت ایمانداران تسالونیکی را اذیت کردند تا جایی که برخی از آنها جانشان را از دست دادند چیز دیگری که تیموتاوس وقتی در آتن به پولس ملحق شد به او گفت این بود که ایمانداران تسالونیکی سوالات زیادی برایشان پیش اومده. وقتی که پولوس در تسالونیکی بود، تعالیم زیادی در مورد آمدن سانویه ایسای مسیح به اونها داده بود. وقتی که نامه اول تسالونیکیان رو میخونیم، این قاعده رو که بارها به اون اشاره کردن به خاطر بیارید. کتاب کتاب مقدس به ترتیب تاریخ وقوع آنها منظم نشدن، بلکه براساس اساس آنها در کتاب مقدس قرار گرفتند. اونها به دلایل مختلفی در جای خاصی قرار گرفتند. اگر نامه پولس رو به ترتیب کنار هم قرار بدید و از اولین نامه تا به آخر شروع کنید، اولین کتابی که در صدر رسالات خواهد آمد اول تسالونیکیان هست. محققین معتقدند که اولین نامه پولس رساله اول تسالونیکیان هست. اون نامه در خلال دومین سفر بشارتی پولس نوشته شده و در همون اوائل خدمتش، او کلیسای تسالونیکی را تأسیس کرده. پولس باید در طی سه هفته ای که در تسالونیکی بوده، در مورد بازگشت ثانویه خداوند عیسی مسیح با اونها صحبت کرده باشه. وقتی که محتوای اول و دوم تسالونیکیان رو مطالعه می‌کنید، شاید تعجب کنید که پولس با زمان کمی که در اونجا حضور داشته، اینقدر در مورد بازگشت ثانویه عیسی صحبت کرده. بسیاری از مردم حتی هرگز این واقعیت رو نشنیدن که عیسی مسیح گفته دوباره باز خواهد گشت این به نظر من جذاب هست چون در کتاب مقدس شما 1189 باب میبینید که از اونها 260 باب در عهد جدید هستند. در این 260 باب عهد جدید به بازگشت سانویه مسیح 318 بار اشاره شده با این حال بسیاری از مردم میگویند که اونها حتی این واقعیت رو نشنیدند که مسیح گفته باز خواهد گشت. یادتونه که وقتی کتاب های انبیا رو بررسی میکردیم گفتیم که انبیای مانند میکا و اشعیا آمدن اول مسیح رو پیشگویی کرده بودن. در همون آیاتی که در مورد آمدن اول او پیشگویی کردند بازگشت سانویه او را نیز پیشگویی کرده بودن. بعضی از اون آیات باید به عنوان چیزی که به اون پرانتزهای بزرگ میگیم جدا بشن محققین معتقدند که دوره کلیسا یا دوره فیز پرانتزی بزرگ بین دو ظهور عیسی هست در این موعظه پولس با قوت بر آمدن ثانویه مسیح تاکید میکنه یقینا این دلیلی داشته تسالونیکیان بود پرست بودن وقتی که اونها تبدیل شدند از بتهایشان به طرف مسیح برگشتند البته مسیح زنده است این چیزی بود که وقتی پولس قیام مسیح رو موعظه می کرد مورد نظرش بود. مسیح زنده است و اون میتونه وارد زندگی شما بشه و در بدن شما ساکن بشه. این تسالونیکیان چون بدپرست بودند به چیزی ملموستر از اون نیاز داشتن. بنابراین پولس مسیحی رو موعظه می کرد که به صورت مرعی خواهد آمد. همونطور که به صورت مرعی سعود کرد به صورت مرعی نیز باز خواهد گشت. پولس حتما احساس کرده بوده که لازم تسالونیکیان به مسیحی ملموس ایمان بیارن. اما به هر حال او وقتی در تسالونیکی بوده بر بازگشت ثانویه مسیح بسیار تاکید کرده وقتی تیموتاوس به او ملحق شد به او گفت پولس اونها سوالات زیادی درباره تعالیم تو از بازگشت ثانویه مسیح دارن یکی از سوالات اساسی اونها اینه تو درباره ربوده شدن کلیسا با اونها صحبت کردی تو به اونها گفتی وقتی که عیسی مسیح برگرده اولین کاری که خواهد کرد اینه که ایمانداران خودش رو از این دنیا خواهد رو بود. ایمانداران ربوده خواهند شد تا اینکه با مسیح باشن سؤال اونها در تسالونیکی این هست. پس کسانی که به خاطر ایمانشان در جفاها شهید شدهاند چه خواهند شد؟ اونها این برکت بزرگ رو وقتی عیسی برگرده از دست خواهند داد. پولس صمیمانه تسالونیکیان رو دوست داشت. او به خاطر اونها رنج کشید و بعد شنید از وقتی که اونها رو ترک کرده اونها هم متحمل رنج شدند متنی که این جلسه را با اون شروع کردیم آشناترین قسمت در نامه پولس به تسالونیکیان هست این متن بزرگ که بر اساس تعالیم پولس در این دو نامه بر بازگشت ثانویه مسیح متمرکز هست از قلب پولوس برآمده که ممنوع از محبت به تسالونیکیان هست اولاً به عنوان معلمی بزرگ پولس نمیخواد این ایمانداران عزیز در تسالونیکی بیخبر باشند ملاحظه کنید که پولس با قلب معلمی که داره چطور غالبا به مردم میگه اما ای برادران نمیخواهم شما بیخبر باشید. او همون چیز رو به قرنتیان هم گفته. این فریاد یک معلمه اینطور نیست؟ هر معلمی باید با قلبش فریاد بزنه. من نمیخوام شما بیخبر باشید. چون پولس معلم بزرگی بود شاید یکی از بزرگترین معلمی که تا کنون زندگی کرده نمیخواست که نو تسالونیکی اتسالونیکی درباره بازگشت ثانویه مسیح بی خبر باشند چون پولس خادمی بزرگ بود نمیخواست ایمانداران تسالونیکی بی ایمان باشند پولس پیش بینی میکرد که درباره آمدن ثانویه مسیح چه چیزی با آنها خواهد گفت پولس مینویسه زیرا اگر باور میکنیم که عیسی مرد و برخاست به همین طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خابیده با وی خواهد آورد و با اونها درباره آمدن سانویه مسیح صحبت میکنه پولس به ایمانداران تسالونیکی ربوده شدن کلیسا رو با جزئیات خاص توضیح میده چون پولس نبی بزرگی بود نمیخواد که ایمانداران تسالونیکی وعده ای از خدا نداشته باشند از اون رو به اونها میگه زیرا این را به شما از کلام خدا میگوییم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست ما این تعلیم رو بوده شدن کلیسا رو به جز پولس از کس دیگری نمی‌شنویم پولس ادعا میکنه که این حقیقت را از مکاشفه عیسی مسیح به دست آورده به گفته پولس این وعده ای از کلام خداوند بود چون پولس شبان بزرگی هست نمیخواد که این مردم عزیز آسایش نداشته باشن. این احتمالاً اصلی ترین انگیزه پولس برای درمیان گذاشتن این حقیقت با تسلونیکیان بود چون سوال اونها این بود وقتی عیسی مسیح دوباره بازگردد تکلیف کسانی که در ضمن این جفاها کشته شده‌اند چی خواهد شد بنابراین یکی از حقایق بزرگی که پولس با اونها در میون میذاره اینه وقتی که عیسی مسیح دوباره برمیگرده او در ابرها باز خواهد گشت همونطور که با عبرها صعود کرد اولین کاری که خواهد کرد ربودن کلیسایش است کلیسای او در دو مرحله به بالا ربوده خواهند شد تا با خداوندشان باشند. اول کسانی مانند شهدای شما در تسالونیکی خواهند بود که مرده پولس می نویسه اولین چیزی که وقتی ربایش صورت می گیره اتفاق خواهد افتاد اینه اول کسانی که در مسیح مرده بر برخواهند خواست کسانی که در بازگشت مسیح زنده هستند پیش از مردگان رو بوده نخواهند شد مردگان مقدم بر زنده ها خواهند بود همون چیز رو برای قرنتیان هم در اول قرنتیان باب پانزده می نویسه. فکر می کنم این رو قبلا بهتون گفتم که وقتی من بچه بودم معلم کانون شادی این رو برای من به تصویر کشید. او میزی داشت که با مخملی سیاه پوشیده شده بود او صدها میله فلزی و چوب کبریت رو با هم مخلوط می کرد و آهنربای قدرتمندی رو بالای اونها به حرکت درآورد میله های فلزی آهنربا شدند و به اون چسبیدندم ماتشوب کبریت ها همونجا موندن. بعد او گفت وقتی ایسا برمیگرده روبایش ایمانداران نیز به همین صورت خواهد بود. ایمانداران جذب مسیح خواهند شد و بقیه باقی خواهند موند. عیسی این رو در تعلیم بالای کوه زیتون بزرگترین تعلیم او از بازگشت دوباره اش به شاگردانش گفته. عیسی گفت از دو نفر که در مزرعه هستن یکی را میبرند و دیگری میگذارند معلم کانون شادی می گفت همونطور که میله های فلزی جذب آهن ربا شدن و چوب کبریت ها رها شدن، اگر شما شخصی روحانی باشید، اگر با مسیح صادق باشید، اگر وقتی مسیح میآید تولدی دوباره داشته باشید شما بوده خواهید شد تا در آسمان با او باشید. اما اگر روحانی نباشید مانند چوب کبریت ها بر روی زمین رها خواهید شد. من با چشمانی که از تعجب باز مونده بود به روی میز نگاه می کردم و از همون روز صبح تصمیم گرفتم که یک میله فلزی باشم. من نمیخواستم وقتی ایسا بر برمیگرده روی زمین رها بشم. شاید شنیده باشید شبانی که به خاطر غیبت کردن زنان در کلیساش نگران بوده و من گمون میکنم این مشکل تمام شبانها در تمام دنیا هست. اون شبان واقعا از غیبت کردن زنان ناراحت بود بنابراین روزی که داشت در مورد تعالیم کوه زیتون در متا 24 معیزه می کرد اون جایی که میگه، و از دو زن که دست داست می می‌کنند یکی را میبرند و دیگری را می‌گذارند، او آیه کوچک دیگری هم اضافه کرد که در انجیل وجود نداشت. او به جمعیت چشم دوخت و گفت: دو زنی که غیبت می‌کنند هیچ کدام رو بوده نخواهند شد. هر دو رها خواهند شد. این همون چیزی که شما بهش تفسیر میگید یا خوندن چیزی از کتاب مقدس که در اونجا وجود نداره. در واقع کتاب مقدس چنین چیزی به ما نمیگه. اما من مطمئنم بسیار از شبانها چنین احساسی دارن، چون که قیبت کردن میتونه مشکل بزرگ هر کلیسایی باشه. ربوده شدن کلیسا تعلیم بزرگ اول با باب چهار هست. به خاطر داشته باشید که این متن با چه انگیزه ای نوشته شده؟ انگیزه نوشتن این متن اینه. پس شما باید یک دیگر را با این کلمات تشویق کنید. به این دلیل که پولس این تعلیم بزرگ رو درباره ربایش کلیسا میده این موضوع اصلی نامه او به مردم تسالونیکی هست همونطور که گفتم این موضوع اصلی هر دوره ساله تسالونیکیان هست چون که ایمانداران تسالونیکی در مورد بازگشت سانویه مسیح سؤال کرده بودند و تیموتاوس این سؤال رو به اطلاع پولوس رسانده بود آیا شما حقیقتا این امید مبارک رو که تنها امید کلیسا در این دنیا هست به عنوان بخشی حیاتی از سیستم اعتقادی خودتون دارید؟ اگر کلیسا فردار بوده بشه آیا شما بوده خواهید شد و یا بر روی زمین رها خواهید شد. من ایمان دارم که در ابرها با همدیگر ملاقات خواهیم کرد اگر شما همین ایمان رو دارید پس لازمه که مشغول باشید دویتL المودی به ما گفته که دنیا مانند کشتی در حال غرق شدن است. خدمت ما اینه که نکشتی رو رنگ کنیم یا سعی کنیم کشتی رو نجات بدیم بلکه باید سعی کنیم، مردم زیادی رو که در این کشتی در حال غرق شدن هستند نجات بدیم. چون که برادران و خواهران این کشتی در حال فرو رفتنه. ما یکی از لذت بخشترین موضوعات مورد علاقه ایمان و در عین حال یکی از ترسناکترین نبوتها برای کسانی که ایمان ندارند رو مطالعه کردیم. ما بررسی اولین نامه پولس به تسالونیکیان رو شروع کرده ایم. حالا بذارید نگاه دقیقتری دقیق تری به های بندازیم. بازگشت ثانییه مسیح هسته اصلی و موضوع هر دوی این نامه‌ها هاست. باب اول تسالونیکیان این طور شروع میشه از طرف پولس و سیلاس و تیموتاوس به کلیسای تسالونیکیان که به خدای پدر و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد فیض و آرامش از آن شما باد ما همیشه خدا را به خاطر شما شکر می‌کنیم و همواره نام شما را در دعاهای خود ذکر می‌کنیم زیرا در حضور خدا که پدر ماست به یاد می‌آوریم که چگونه ایمانتان در فعالیت و محبتتان در کارها و امیدتان به خداوند ما ایسای مسیح در صبات و پایداری شما مشاهده شده است. این یکی از زیباترین تحییت هایی هست که پولس رسول نامه اول تسالونیکیان رو با اون شروع می در یکی از نامه پولس به قرنتیان در باب معروف محبت، اول قرنتیان 13 پولس گفته که سه کیفیت بزرگ در این زندگی عبارتند از امید، ایمان و محبت. امید چیز مهمی هست چون امید این اعتقاد راسخ در قلب هر انسانیه که چیز خوبی برای من اتفاق خواهد افتاد چیز خوبی در این زندگی هست و من روزی اون رو تجربه خواهم کرد این اعتقادی هست که به اون امید میگیم امید چیزی حیاتی هست چون ما رو وادار به حرکت میکنه گفته شده که امسال هزاران نفر جان خودشون را از دست خواهند داد وقتی روزنامه نیوزویک این مسئله رو مورد مطالعه قرار داد به این نتیجه رسید مردم زندگی‌هاشون را از دست میدن چون که اونها معتقدند که هیچ اتفاق خوبی براشون نخواهد افتاد به عبارت دیگه اونها امیدشون را از دست دادن این غم که هزاران نفر امسال امیدشون رو از دست میدن اما آیا این خارق نیست که ها نفر هستند که هنوز امیدوارند اکثریت این مردم افراد روحانی نیستند اگر ما مشکلاتی رو که اونها با اون مواجه هستند میدونستیم تعجب می کردیم چرا اونها معتقدن که هیچ چیز خوبی براشون اتفاق نخواهد افتاد؟ امید واقعی یک معجزه هست خدا امید رو در قلب هر انسانی قرار میده این طبیعی نیست که مردم امیدشون را از دست بدن بر اساس نوشته های پولوس و بر اساس باب ایمان باب یازده ابرانیان ویژگی حیاتی دیگر در زندگی ایمان هست ایمان در باب ایمان اینگونه توصیف شده ایمان اطمینانی هست به چیزهایی که با آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی بینیم. ما امید خودمون رو داریم. ما معتقدیم که چیز خوبی وجود داره، اما این اعتقاد تنها امید هست تا زمانی که مبنایی برای اون داشته باشیم. دلیلی که باور کنیم چیز خوبی برای ما اتفاق خواهد افتاد بر اساس الهیات پولس بدون زیربنا یا نشانی که دلیل بر وقوع چیز خوبی باشه، امید تنها یک آرزو هست. اما وقتی به عیسی مسیح ایمان میارید مبنایی برای امیدتون دارید چونکه ایمان به امید ما استحکام میبخشه یک بار شنیدم که واعزی ابرانیان عبرانیان یک رو اینطور به تصویر میکشه او میگفت وقتی شب یکشنبه برای شام به خانه کسی دعوت میشه امیدواره که اونها خوراک مرغ داشته باشند او هیچ دلیلی نداره که باور کنه که اونها مرغ خواهند داشت این فقط امید او هست اما وقتی به خانه اونها میرسه وقتی که در اتاق پذیرایی نشسته و بوی مرغ بریان به مشامش میرسه اون میگه حالا اون بوی مرغ به امید او استحکام میبخشه و اون بو شاهدی برای چیزی که هنوز ندیده این تفاوت بین امید و ایمان هست. ایمان باید دلیلی داشته باشه که به اون موضوع باور کنه امید و ایمان هر دو خصوصیات ضروری هستند اما بزرگتر از این خصوصیات پولس گفته محبته پولس به این نتیجه رسیده چون که محبت محبت آگاپه چیزی نیست که شما رو به چیزی برسونه که اون چیز شما رو به خدا برسونه وقتی شما محبت آگاپه رو تجربه می کنید به این دلیل هست که محبت در واقع خود خدا هست ملاحظه کنید که پولس چطور این سویجگی حیاتی رو در تهیت خودش به ایمانداران تسالونیکی به کار برده او میگه زیرا در حضور خدا که پدر ما هست به یاد می آوریم که چگونه ایمانتان در ها و محبتتان در کارها و امیدتان به خداوند ما عیسی مسیح در ثبات و پایداری شما مشاهده شده است ای برادران ما میدانیم که خدا شما را دوست دارد و شما را برگزیده است چیزی که پولس اینجا عنوان میکنه کنه اینه که این سویجیگی حیاتی نشانه یه چیزی هستند کار شما نشون میده که شما ایمان دارید پس اون کاریه که نتیجه ایمان هست. بعد نوع دیگری از کار هست که نتیجه محبت هست. یعنی اعمال کوچکی که مردم نسبت به همدیگه انجام میدن در نتیجه محبت هست و بعد امید به شما قدرت تحمل میده. یک ارزش حیاتی منجر به ارزش حیاتی دیگر میشه. پولس برای شروع کردن نامش به این ترتیب دلیلی داره. به غیر از بقیه چیزها که تیموتائوس به پولس گفته، باید به او گفته باشه که چون تسالونیکیان تعالیم او را از بازگشت صوی ایسا درست درک نکردند، بعضی از اونها تصور کردند که بازگشت صوی ایسا اونقدر قریب الوقوع است هست که دست از کارشون کشیدن. اونا حتی کار هم نمیکنند تمام مدت روز رو مینشینند و منتظر بازگشت خداوند هستند. در اولین باب از کتاب اعمال وقتی که ایسا داشت به آسمان سعود میکرد، دو مرد در اونجا ظاهر شدند و اعلام کردند، که همین عیسی‌ای که به آسمان صعود کند به همان ترتیب نیز باز خواهد گشت این فرشتگان خطاب به شاگردانی صحبت میکردند که معموریت بزرگ به اونها سپرده شده بود اونها پرسیدند ای مردان جلیلی چرا اینجا استادید و به آسمان نگاه میکنید همین عیسی که از پیش شما به با آسمان بالا برده شد همان طوری که بالا رفت و شما دیدید دوباره به همین طریق باز خواهد گشت در مورد بازگشت مسیح ما دو افراط و تفرید میبینید اگر شیطان نتواند ما را به یکی از این لبه‌ها بکشاند سعی خواهد کرد به لبه دیگر بکشاند یکی از این افراد اینه که شما اصلا در مورد بازگشت مسیح چیزی ندونید و یا اگر بدونید حتی راجب اون فکر نکنید و اون انگیزه ای برای سیستم ارزشی شما و یا طرز زندگی شما نباشه افرات دیگر اینه که شما فقط بیستید و چشم به آسمان بدوزید و هیچ کاری برای انجام ماموریت بزرگ نکنید در شروع موضوع ایمان برای تسالونیکیان پولس آمدن ثانییه مسیح را به زیبایی و به موقع شرح میده. پولس مینویسه پیوسته درباره جمعی شما خدا را شکر می‌کنیم و دائما در دعاهای خود شما را ذکر می‌نماییم. ببینید پولس تذکر میده که اگر شما ایمان داشته باشید باید کاری انجام بدید. چون اعمال ایمان شما محبت و صبر و امید شما را در خداوند ما مسیح در حضور خدا و پدر خدا یاد می کنیم زیرا که ای برادران و ای عزیزان از برگزیده شدن شما مطلع هستیم زیرا در حضور خدا که پدر ما هست به یاد می آوریم که چگونه ایمانتان در فعالیتها و محبتتان در کارها و امیدتان به خداوند ما ایسای مسیح در صبات و پایداری شما مشاهده شده است ای برادران ما می دانیم که خدا شما را دوست دارد و شما را برگزیده است پولس بر تحمل تاکید میکنه چون که اونها در جفا بودند و به تحمل نیاز داشتند. وقتی که اولین نامه پولس به تسالونیکیان رو میخونید، دیدگاهی از پیشرفت کلیسای تسالونیکی به دست میارید که پولس در کمتر از یک ماه تاسیس کرده بود. در باب یک آیات 7 تا نو پولوس پولس مینویسه به حدی که شما جمعی ایمانداران مقدونیه و اخایی را نمونه شدید به نوعی که از شما کلام خداوند نه فقط در مقدونیه و اخاییه نواخته شد بلکه در هر جا ایمان شما به خدا شیوع یافت. به قسمی که احتیاج نیست که ما چیزی بگوییم زیرا خود ایشان درباره ما خبر می دهند که چه قسم وارد به شما شدیم و به چه نوع شما از بوتها به سوی خدا بازگشت کردید تا خدای حی حقیقی را بندگی نمایید. من فکر می کنم این موجزه زیبایی هست وقتی که می فهمیم این کلیسای پرسمر و روبه روش در طی کمتر از یک ماه تأسیس شده و این نشون میده که باید مسح روح القدس بر خدمت پولس بوده باشه. ملاحظه کنید که باب یک با اشاره به آمدن ثانویه ایسای مسیح به پایان میرسه و همینطور ملاحظه کنید که تمامی بابهای اول تسالونیکیان با اشارهای به بازگشت ثانویه ایسای مسیح خاتمه پیدا میکنه در انتهای باب یک پولوس به ما میگه که منتظر بمونید او میگه و چگونه در انتظار ظهور پسر او عیسی که از آسمان میآید بسر میبرید آری همان عیسی که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت و ما را از غضب آینده رهایی میبخشد تفاوت زیادی هست بین بیدار بودن و منتظر بودن در مباحثه کوه زیتون و در یکی از مثالهاش عیسی اینطور گفته پس بیدار باشید زیرا که نمیدانید در کدام ساعت خداوند شما میآید دوست داره که از کلمه انتظار کشیدن برای بازگشت ثانویه مسیح استفاده کنه. او بارها از این کلمه استفاده می‌کنه. یک بار در ایسکاه راهان بودم. یک مأمور پلیس فدرال رو دیدم که یک زندانی رو به دست خودش دستبند کرده بود. اونها منتظر قطاری بودند که اونها رو به زندان ایالتی می‌برد. در همون سکو دختر جوانی هم بود که نامزد بود و قرار بود که در چند روز آینده ازدواج کنه. او هم منتظر همون قطار بود که قرار بود نامزدش با اون وارد بشه. وقتی به این مردم نگاه میکردم با خودم فکر کردم اون زندانی که به دست معمور پلیس بسته شده نگران ورود قطار هست. اما اون دختر جوان منتظر ورود قطار بود. سخته که این حقیقت رو در زبان خودمون معنی کنیم اما در زبان اصلی یونانی این کلمات به معنی انتظار مشتاقانه مانند اون زن جوان هست. در هر باب این نامه وقتی پولس باب رو به پایان میبره به این واقعیت اشاره میکنه که ما با اشتیاق منتظر بازگشت مسیح هستیم در باب دوم این نامه شما نیمرخ زیبایی از پولست دارید نمونه یک خادم الان فرصتش نیست که اون رو بخونم اما اگر 22 آیه نخست باب دوم رو بخونید شما نیمرخ حیرت انگیزی از این خادم شجا رو خواهید دید وقتی باب دوم رو مطالعه می کنید، جسارت، شجاعت، سمیمیت و صداقت او و وفاداری او به خدا و کلام خدا را ملاحظه می کنید. ملاحظه می کنید که پولوس در صدت نیست که انسانها را راضی کنه. بلکه قصد او جلب رضایت خداست. پولس چاپلوسی نمی کنه اما مانند یک مادر مهربان هست. او مانند یک پدر مقتدر بود. او به بیش از مسائل مالی فکر می کرد. او تسالونیکیان را سمیمانه دوست داشت. به اونها می گفت که هدف او از زندگی اینه که اونها به لحاظ روحانی کامیاب بشن وقتی به باب سه می می‌رسید شرحی می‌بینید از اینکه این نامه چطور نوشته شده وقتی نامه‌های الهامی پولس رو می‌خونید نمیتونید از تعجب خودداری نکنید که چطور و چرا این نامه‌ها نوشته شده‌اند گاهی برای اون سوالات از محققین کتاب مقدس پاسخی دریافت می‌کنید این شاید موجب سردرگمی شما بشه چون که محققین کتاب مقدس اتفاق نظر ندارد من متوجه شدم که بسیاری از مردم با هم هم فکر نیستند من قبلا فکر کردم که الهی دانان تنها افرادی هستند که اتفاق نظر ندارن اما بعدها فهمیدم که دکترها هم اتفاق نظر ندارند اگر نزد پزشکان متفاوت برید میتونید برای یک بیماری ده تشخیص متفاوت بشنوید بسیاری از مردم با هم اتفاق نظر ندارند غالباً محققین کتاب مقدس نظرات متفاوتی دارند اما گاهی جواب های اون چطور و چرا رو میتونیم در متن نامه ها پیدا کنیم. شما نمونه ای از این رو در باب سه اول صالونکیام می بینید از این جهت چون این بیخبری دیگر برای من غیرقابل تحمل بود و را فرستادم تا از ایمان شما آگاه شوم زیرا میترسیدم آن اقوا کننده یعنی شیطان شما را به نوعی وسوسه کرده و زحمات ما بینتیجه مانده باشد پولس این تعلیم رو میده چون که نوع ایمانان تسالونیکی باید در مقابل جفاها تحمل داشته باشد. او می نویسه اما اکنون که تیم و از پیش شما بازگشته خبر خوشی درباره ایمان و محبت شما به ما داده است و گزارش می دهد که شما با چه لطفی همواره ما را به یاد می آورید و همانگونه که ما برای دیدن شما اشتیاق داریم شما مشتاق دیدار ما هستید. ای برادران، با وجود همه نگرانی ها و زحماتی که داریم این خبر خیال ما را درباره شما راحت ساخته است. و ایمان شما ما را آسوده خاطر کرده است اگر شما در خداوند استوار بمانید ما زندگی تازه‌ای خواهیم داشت من فکر می‌کنم این خیلی زیباست چون به ما نشون میده که چگونه و چرا این نامه نوشته شده و همینطور دیدگاهی از قلب خدمتی بزرگ پولس به ما میده در باب چهار پولس شروع میکنه و برخی های عملی به ما میده او می‌نویسه نویسه آرزویتان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و در کار دیگران فزولی نکنید و همانطور که قبلا به شما دستور دادیم برای تأمین معاش خود کار کنید تا زندگی شما تأثیری نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای تأمین خود محتاج دیگران نباشید. ملاحظه می‌کنید که چطور او می‌تونه ما رو به حد اعلی در الهیات عمیق بالا ببره و بعد ملاحظه می‌کنید که او چقدر عملگراه هست. خود او به چادر مشغول میشه چون که نمیخواد کسی انگیزه او را زیر سوال ببره. و این رو در رساله دوم قرنتیان توضیح میده. پولس وقتی که قرنتیان انگیزه قلبی و او رو زیر سوال بردن، این رو به اونها توضیح میده. پولس به روش خودش عمل میکرد او حتی سعی داشت با پولی که از چادردوزی به دست آره، هزینه همراهانش را هم تأمین کنه. پولس به تسالونیکیان که به آسمان چشم دوخته بودند و مجزوب بازگشت دوباره مسیح بودند، میگه که باید آرزویتان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و در کار دیگران فضولی نکنید. همانطور که قبلا به شما دستور دادیم برای تأمین معاش خود کار کنید تا زندگی شما تأثیر نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای تأمین خود محتاج دیگران نباشید. شنیدید که گفتن ما با کارهایی که انجام میدیم و چیزهایی که می گیم هر روز یک باب از یک انجیل می نویسیم. مردم چیزهایی که ما می نویسیم می خواه بدون ایمان باشه و یا حقیقت. به نظر شما انجیل چه چیزی هست؟ پولوس چیزی شبیه به این در باب سوم از دوم قرنتیان نوشته و این همون چیزیه که به وضوح در باب سوم تسالونیکیان هم به مردم تسالونیکی میگه در باب چهار پولوس متن بزرگ خودش رو در مورد روبودو شدن کلیسا ارائه میکنه خیلی مهمه که اون متن رو از دیدگاه نگاری ملاحظه کنیم همونطور که بارها گفتم بازگشت ثانویه مسیح تنها یک رویداد نیست بلکه یک سری بزرگی از وقایع است تمامی این وقایع مختلف قید شدند و به ما گفته شده که همه اینها واقع خواهد شد اما محققین کتاب مقدس در مورد جدول زمانی واقعی یا وقایع نگاری این رویدادها اتفاق نظر ندارند این چالش بزرگی هست که همه این وقایه جداگانه رو به لحاظ وقایع نگاری مورد بررسی قرار بدیم عیسی نقطه پایانی بر تمامی این تلاشا نهاده که قصد دارند تاریخ وقوع این وقایع را پیش بینی کنند عیسی پاسخ داد برای شما لزومی ندارد که تاریخ و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید. ایسا هیچ جدول زمانی و یا تاریخ وقوع برای این حوادث به ما نداده. در مباحث کوه زیتون در مرقص باب سیزده او گفته اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد. نه فرشتگان آسمان و نه پسر فقط پدر از آن آقا هست. این اظهارات عیسی به این معنی هست که ما باید موقعیت فروتنانه ای درباره تاریخ وقوع این وقایع اتخاذ کنیم بذارید واقع بینانه فکر کنیم اگر خود پسر خدا از آن روز و ساعت که برمیگرده خبر نداشت و اگر عیسی مسیح به ما گفته که به ما ربطی نداره که اون روز و زمانها ها رو بدونیم ما چطور به خودمون حق میدیم جزئیات تاریخی رو کنار هم قرار بدیم و زمانی رو برای وقوع این حوادث معین کنیم این قبیل مسائل باعث به هم خوردن رابطه دوستی ما با کسانی میشه که با ما اتفاق نظر ندارند اما اشتباه نکنیم که این وقایع قطعا اتفاق خواهند افتاد و هر طور که به ربایش فکر میکنید امیدوارم که به این باور برسید که کلیسا ربوده خواهد شد آیا شما به ربوده شدن کلیسا در سیستم اعتقادی خودتون باور دارید آیا به ربوده شدن کلیسای ایسای مسیح اعتقاد دارید یادتون باشه که پولس رسول این حقیقت رو با ما به این خاطر در میون گذاشت که موجب تسلی و آرامش ما بشه این امید تمامی ایمانداران هست اما کسانی که ایماندار نیستن رها خواهند شد و عواقب اون رو تحمل خواهند کرد ایمان، محبت، امید اگه شما ایماندار به عیسی مسیح هستید و این سه خصوصیت رو دارید دیگه فرقی نمیکنه. در چه شرایط سختی باشید آرامش عظیمی که فقط عیسی میتونه به شما بده همه مشکلات رو خواهد بلید. درس امروز ما رو با چالشی مواجه کرد. خیلی هستند که وقتی ایسا برای کلیساش برمیگرده رفوز خواهند شد. بیاید با بشارت انجیل به همه مشغول بشیم. به پایان درس آلیه دیگری رسیدیم. امیدوارم که امروز از حضور خداوند عیسی مسیح برکت گرفته باشید. پرنامه رو توری تنظیم کنید که در درس بعدی در ادامه آمدن سوانح عیسی مسیح با ما همراه باشید تا برنامه بعدی دعا می کنم آرامش خداوند توسط روح قدوسش بر شما قرار بگیره.